بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين وصحبه أجمعين ناصيونا ناصودارنا تبارك وتعالى أجمعين اللهم رسلنا أجمعين مشايخنا رحم نعبد رحمتك يا رب أَعْدَىٰ سِنِيَّةَ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ من دیروز این به زمین مرنوات ما این در کتاب حوال الله عالی آمده در که در بخشی که مربوض به کلمات ابن فرده چون حوال الله عالی تخصیم یه مقدارش کلامات انجامه است یه که قسم این کتابی که چار در شهار جل. در جلد 3 نشه از قسم که از کتاب ابن فرده همی من استقرار اشتباه حدیثی شما در ارداه استفاده میشه البته ضعف اسنادش قابل انکار هست اما به هر این اشتباه تصحیح بشه اون رو که اینقدر استفاده داده به منفعتیه اون وقت واقعا نظر ائمه اونی که الان توی کتاب شاکر هست من محضر البارع ندارم مال شعر مختار نافع رو در اختیار من نیست محقق کتاب اعمال لالی از محذب در باب احتکار عبارت این اون عبارت مشتره این کلام خود ابن فرده ولن الانسان مسلطان الان ماضه این طوری که این طوری که این محقق کتاب نهازه من الان نصفت نمیدم چون کساب ابن فرد الان پیش من نیست نمیتونم چیزی نصفت اگر این چیزی رو که محقق کساب آیه عراقی آیه عراقی نه هم فرموندن اگر درست باشه این عبارتی در حاشیه کتاب ابوالابی آمده اگر درست باشه اونجا هم مشکل نیست این حدیث باشه اگر این عبارت درست باشه و دقیقاً مشو نعرقل کرده عبارت مشکلی با حدیث نیست نه حالا اگر این شده بحثه تو معذب الباره این حالا اگر سفارش آسونه و صبح دیگه راهی تنو که سفارش بکنن ببینید که در معذب الباره اگر نقل کرده به عنوان علیه السلام آورده یانه این عبارت محمد کتاب نه بله این وانوان قومی که علیه السلام و صلی اللہ علیه تذکرم آمده تو بازی قدوب انلامه آمده لیکن صاحبه اوالی از ابن فهر گفتی که در بعض کتابات شیخم آمده حالا چون من مراجعه مستدون نکردم در این چاپ جدیدی که از کتاب اوالد و ایام مرگوم نراغی شده زحمت هم دیگه نصیفه شنگی نصیفه خیلی بودش رساله اله استفاده اینو سجه اله عوارض بسیار کتاب خوبیه شبیه عوارض فقیه است بیشترش رو کشف‌کننده این کتابیات که بود شباب اصلا مطالعه کردن روی تحقیق که این عوارض خوبی داره مثلا یک قسمی یکم مشترکات رجالی ضعف کردن اسماء رو ضعف کردن یک کشف بسیار لطیفیه مرحوم نهایی قدس الله سره نتیجه عوارض فقیه رو در اونجا داره در همین کتاب داره این صاحب از کلم مرمو محق یکی از نکات مهم زندگی ایشان سر می کنه آزادانه بکنه سر میکنه که اگر مطلبی گفته شده تویش یادی کنه خودش شک بکنه این نقطه خوب و مصبتی دید از من در درست مرمو اصلاح خوبی هم مراز وزیفه می شون خیلی مقرد از مستند نراغی نراغی نراغی یکی از کتابایی ک خوبه مجموعه کتبی که در مجموعه نراقیه نوشته بسیار خوبیه اگر یک کنگره گرفتن دادین کتاب بهتر سنن و کردن ایشون اهدا کردن انصافاً کتاب نراقیه که در مجموعه اهدا بشه خود تضامین ایشان یک کشف موننده کتاب خوبیو میشه درسته نه سر و منافک شده و وصف قدس جلیل و متعال است مصطرف خیلی زحمت کشیده مصطفی کتاب شب گیت تعریف شده خیلی زحمت کشیده و در این عوائزی که من الان بیدم تحقیل کرده از مسادر اهل سنر از دو سال سنن بیتخی و سنن داربخشی هم نهر کرده و که من به هر دو مراجعه کردم نبود هر دو نهر اشتباه بود اگر و که اگر معلوم شیعه که اللام قولیه علیه سامورم آن با باید توی مسادر سنی باشه من چونی روز از در این کتابی که احیان چاپ شده در هاشیش است کرده ده هم سنن بیهقی و هم سنن داوودی و من به هر دو مراجعه کردم چون چه نرلا نقلا اعتماد نمیکنم فاضل من ایشون هرج همش هایک بکنه باز خودم به شخصه مراجعه بکنم متاسفانه در هر دو مورد نبود الله و صلی الله تعالی علیه و آله مگر بیهقی بود ولی ادمی که ضرور نه در داوودی اهمال داره باشه انا من روز از کلام حدیث بوده اگر یارو شی بعد علامہ مرده احتمالاً یک مسئله حدیثی به اهل سنت داره حالا صحیحاً و زمینتن آدم هم ضعیف است اما به هر حال مصدری داره اینطور نیست که بی اساس و بی اساس باشه این است که بحث بیرونی است هر جایی به بحث امروز اثر خدای معلوم شیخ در اینجا متعرض بعد از شروع خلاف داخل و قابل شدند کسی که پول بده به قاضی و خود قاضی اگر اختلاف دادتا عادتا صورت اختلاف بیشن ستا سال و شنش متعرضه برزر سوال شده و کران ارز کن احتمالا مستری در اختیار شیخ بودی که بیشون در جوه از اینجور این سه صورت رو آورده سه صورت در کلمات مرحوم شیخ انصاری فیرنزه شده آنطوره همین نقل خود ایشان متعرض میشه سورت اول هر دو مندلی باشن که هبه بوده به تبدیل مرحوم شی من باز هم برای خیلی بسواس دارم که مسائل عبارت به خود شیخ رو یک صورت یک در دافع انها حدیدتون ملحقتون به رشق خلق در غرمه باسته این موضوع با عبارت سابق شیخ نمیسد و در قابض اینجا قابض در این مورب قاضی انها حبتون صحیحتون لدائل غربه و غیرها اصلا ممکنه قاضی بیده آقا این آقا قبل از اینکه که بیاد پیش من و پردندش که این با من مثلا آشناست اصلا مثل این آقا با من رفیم بوده، آشنا بوده، فامیل بوده به منه برداشت که برای من یک هدیه ی بوناسلاته که اصلا اضعاج بکشنگ مثلا این بر من آوازه بعد از این که هدیه بود به به دو ماه یه مشکل قضایی پیدا کرد، آمد پیش من بعد من به نظر شک نکردم حالا دیگه نه واقعا اون قولی که داده روش دور شد. در کنارش فلسفه رسما یعنی اختلاف سلیقی در صورتی که ایشون مثلا اجزام میکنه که کُلناً حدیه رشعی نیست. و او اجزام میکنه که حدیه ی صحیحیه. این <تصفيق> ظاهر عبارتی که مرحوم شیخ نوشته. بعد در مقام به صلاح حل مشکل کردن احتمال تقدیم اولن قول دافع مقدم بشه لهمنه دافع اعرف و به نیته چون اون نیته خودش رو بهتر میدونه بله در اینجا دیروز من متعرض شدم این شرح اجمالی برداشت های شرح ترسی جرم من موانی روانی نوشتن اشارتونی لهمن المدعی ازده مالای علم الا منتبله قدم قولو و هوا غیر مرزی این در مصنف یعنی خود مرمون شیخن و سر رهد الخیارات به عدم نهو زدهی علا ذالکه عمومه و این موارد خاصه که اخبار مرعت ان هم و طب. و تو و دالکه لایوجو و بر باق الموارد علیه این اشکال مرمون محققی روانی ما دیگر خیال کلال هسته واقعا اون مرد بزرگواری دقیقه نظر و من احتمال میدم توی این عبارت کمی کمیتی دهن بوده ببینید ده ما از کردیم این نقطه رو من توضیح کافی دیمید ما دو بحث داریم درسته این بحث هست کلو مالای عرف الا من قبل قائله و قوله حجتون توی این داریمونی تاکنون زیرو سودی این دو تا اشتباه شد فقط یک قاعده یک قاعده در خصوص که با قضاوت که مدعی میخوایی مونشر می‌خواد بگین کسی که مطلب رو می‌گه که لا یورت این ممکنه این مونچه است از بگه خود بازو حرکت مقابل باید بگی نه بابا پس یک بحث بحث قضاوت یک بنش اصلا ربشی به قضاوت نداره اختلاف یا مطلح نید اصلا برحسان هر مطلب یه رو دعوان هم نماشه اختلاف یا مطلح نید مطلبی رو که شما این چیل الا از خریف قائد مجده. من مجده مرمولی الوانی این مدهی ازده آمالای اولاد این مدهی ازده بابا بگاره بعد مثال نزن که اخبار مرهت عل حمل ورده خیلی بابا خذابت هست شوهر از شما دیگه رسون در یه میگه نه این کافیه این بحث دیگه این رفت شما خذابت نداره دعوا مطرح نیست این شه قاضی مطرف نیست این که مثال مرد یه زن این بحث شوهر نیست این بحث خذابت نیست این نیست رفت این از قاضی حتی در مورد دیگه در یابان زنجیری دلیل از پوششوار نمی کافی چون جایی خود مسئله چون سن یابان در این مسئله در تفسیر که در شهر بوده در یابان نه در از من مطلقا حجه نیست از میگم مطلقا حجه نیست میگم یا شما میگید که اگه می نداره ولی مستقل حجه ده کاکیه ده کاکیه اصلا نمیشه نمی شه می نه سر سرش همین این ما بعد مایی رو بکنیم سفر کلشو باشه سرشید که ممکنه ما در باب قضا قبول بکنیم در باب قضا چرا؟ چون باب قضا یه نقطه داره اون نقطه شرک و چون ما اگر دسته حل و فرسرکانی دعوان یک دوتر بیمه باب قضا هست باب قضا یه باب اغلایی یعنی یک سیره اغلایی هست که باید تو جامعه اخلاف نباشه نظر نباشه یعنی ا ولی ها از خیلی شدن هم توی مسئله قاضی قاضی منصوب قبول ندارن به قصد کنیم قاضی تحکیم را قبول دارند سلامت المشروع ایشون محقیشی در فیلات فقیه حتی قضاوات قبولتی اتا اداره اشترسی محقیم ایشونی قضاوات بگیرن شد قضاوات در سر فقای ما شاید شد در سر ما قضاوات قبول دارن که فقیه منصوب از ها مستفل ای ندارن لیکن قضاوت رو از ما یک اما او اوراضی یک مصری تو جامعه بود قضا اختلاف این جامعه اوراضی این احتیاجی به نص در معنا دولت یعنی دیوشیت میشیم به نص چون این نص است و به نص کاویم اومد چه روایت عمر هنده بله چون بعده ما تا زمانی اون بود دیگه هم گزار نمی کنه یعنی قاضی نص نمیکنه سعیش محترم بدید قاضی منصوب دار نمیشه اون, اون که هایی روشنی خاضی منسوب دقیقه فرموندید پس بنابراین ممکن است ما تو باب قضاوت در رحب اختلاف قبول بکنیم میگم مرموم محلی ایرانی با جرافت هر کدا استاد ما فرده داریم این دو مقام نگداشت شبا نشه ما دو مقام داریم میگم یکی از نکات مهم در فقاهت در حوضه های ما همین زرافت هایی کاریم ممکن ما در یک جا این رو قبولی بکنیم دو خاطره چی بخاطی این که به هر حال ما بازر بخش اومد بکنیم یک ممکن است نقطه دیگری باشه که این روز توضیهشو خواهند داد اصلا شاید اون شاید این رو ممکن ببینه اون توضیح این مثلا یک کلمه نیم سطح گفتن توضیهشو اراد عرض میکنن اگر باشه پس یک نقطه در واضع قضا اما این خیره از اینه که مثلا شوهر از زنشون یا ماهاته میگه نه اینجا آمدن گفتن مالای عورتی ایلا منقبل صاحبه با قوله او حجت و و پس اون میگه و مربون محتقی روانی در سر شما آوردن مربوط به و غذا اون مثالی که دادن مربوط ببا غذا نیست، این آیه حاضر معاصر دنبال افتاده این مثلا تام این مثال ایشون وقتی با بالغضا نذاره این مساله این اختلاف میشه در حد معمول میشه مثلا زن میگه من گفتم در نه هستم نماز شهاد من اجبار مثلا این به دادگاه مثلا طلاق حالان ایشون که نوشته اخبار من هست عمل هم حامل هست یا نه حیض و تو ایشون نوشته چه تاست؟ بنا ممکنه اما حیض و توح و اینها زاده هست که اونی که متعارهی میشه سآل بکنه روایت هم داریم سآل بکنه مرحله ها زاده سآل بکنه ما یکی زاده سیزار باید این مثلا سآل دوامه این حکس اولی دارگاه که قاضی کاری بکنه من گفتن که دانشجو من گفتن دارن معمولا که چیز داغی چی اندر اگر صبح هر با من ازش این هم زردم گفت ندارم منم گرفتن زنه گفتن در واقع داشتن خب دزدونه نه زرموس می‌کنم یا خب تو گفتی چرا ان درسه این اصلا تصادف شده در خایگی مولا ناغتی نشین چون شو کلی از اشراط مولا خوشم نمیاد من که دایوقد عبارات اینا رو میخونم. این عبارات رو نکته قینی نظر منه نمی مولا باشه هر اینکه دو تا بحثه این ها با هم نشن ما در باب غذابت ممکن است یک تکمگیری بکنیم اون خاص باب غذاست چرا؟ چون تو باب غذابت این مسلمه به هر نحن ممکن باز اختلاف رو برداریم این خودش یک مختلفی بس هم این مختلفی کنم چی دالاری بزنیم چی دالاری فوتوالی ها این اختلاف ما به نظرم باید برداشتر اختلاف و بعد بفرمین قول داور اختباه هم بوده. چون خود اختلاف بنشه مشکلات فراوانیه. دقت کنید؟ برداشتن اختلاف این یکی راه که خود این آوال قبلون بکنید اختلاف اونجوری برداریم. حالا بعد از صبح از و کنید. وله زمان زمان خیلیت ازا کانت زهما بعد تلت. شیخ گفت اثر اولی میگه که من این زامن هبه فاصله بوده این میگه هبه ثبیه بوده من ضامن نیستم میگه قاعده زمان به خاطر قاضی یاد. است اولیاده ماخر چون قضیه این پول مال شخص بوده به این قاضی داده پس قاضی زامنه در اساس زمان فعل است اذا قامت الدعوه بعد الطلب این جو باز مرحوم شیخ اشکال کردن هم مرحوم روانه اشکار کردن هم کوی که در این کتاب معاصر ما از ارفی نی این اشکال توی ایروانی هم آمده تواشی ایروانی هم این اشکال به شیف کده چون شیف فرمون که اگر برنم به هبه فاسد هم داد به فازی زامن نیست چون گفت مالای روزنده سهی داره روزنده فاسده هبه همچنک این هبه سهی زمان نداره هبه فاسده نداره اینجا به شیف اشکال کردن اونتا شیف کنان ما چرا اساس و زمان جري كرديم انجا قاعده لايوزن به سيلا لايوزن به فاصله جري میشه مالايزن به سيلا لايوزن خالص خود شما آوردين مطلب در در چند صفحه قبل آورديد که اگر حجيه فاصله باشه زمان نداره چون حجيه ني نداره پس چطور ني والا اساس زمان فليت اساس ادعا برسه نداره خودتون گفتین درست قاعده انگار در چون نيات ياد مجانی تحقيق مجاني نگذره زمان نداره حبه خاصه هست و رضا هم مرموم ایروانی و مرموم استاد دیگران به شیخ حمله کردن که این مطلب شما با مطلب قبلیت بینیسا دارد اگر نواب موش بکنیم من اول بحث گفتن احتمال میدم شیخی رو از جایی گرده این فرور رو احتمال هم که اون فرق این طور رو بگه شیخ شمه همه که اجل دکنشه احتمال هم چیشون احتمال هم دارد خودش مخواد انتخاب بکنه با عنوان احتمل برای به حسب ظاهر و کرامات و شرف تا حافظه چون اساس زمان اضافه از دعوا و اصل شما گفتید اگه حتی بی بی حدیه فاضله معنی پیدای شما اون حدیه مطلقاً زمان نداره زیر اساس زمان نیست وقتی شما خود کنی مطلقاً زمان نداره حدیه که فاضله چه تاییه پس این هر لا اساس زمان و شروع شد درست است مشاهده مثلا ما که من به خودم میگم مرحوم ما برنامه دي بعضي از كتابات تصفيه بوده شه از اونجاها تصفيهاتو به خدمت و دفتر خودشون ايما صارن من احتمال در اين مذهب بوده بودی استاره ما نيست و شيخ از اونجا اينو فروغ رو نعل کرده در اون کتاب اينجوري بوده درشان شه من به احتمال مصيرش يعني كه اون رو به احتمال ما نذاشتند و لذات بعضي شيخ دياله عبوات تقديمشان حالا دقت كنيد نظامي است که مرحوم گفتن که اگر میخوایی بگید حویه فاسد نگید زمان بگید استرجاع این سرزه در تلس نگیرید فرزه در دقا این بگیری اینجوری اگر میگفت بهتر بود یعنی اگر فرزه این حدیهی داده اون هدیه ماشینه هدیه داده ماشین آنها موجوده اون شخص میگه این عنوان هدیه رشه دادم خود قاضی میگه نه نظره با بالا رشه, رشه. این برانه همیه دوستی پسرمانی من رو دارم داده قبل از خزاواتم بوده اصلا توی مبارده خزاوات رستوران نمیده اینجا آقای خودی نرشته اگر اختلاف شد احتمل زمان حسابت زمان بریم من هم بشین بیم ماشین رو برگردون بشین میگه ماشین رو نه... نه زمان مادان موجود باشه نه بعد از طلب قبل از طلب ماشین رو برگردون این مطلبیه که خود جام داریشون در این مطلب این مطلب اجمالا خوبه مطلب بدی نیست اما ظاهرن یک چیزی میخواد بله اینجا کنه فاضل ما هسته کرده. اشتار گفته باید جایی باشه که این موضوع باشه ظاهرن اونم یک تقیی میخواد بقارین هم تقیی میخواد که نسبال که بایدهی نیم از سخبتهای یه تقریبی از مرحوم های خویی هست مرحوم های آسل علی حاشین که در این آیه آسل رحمون به اصطلاح شعر اونجا این قید رو داره سریع شنه به نظام آفیل در درسته تر اونم در جایی که این حبه به رحم نباشه اینم باید اضافه بکنم چون اگر این حبه به رحم باشه به قسم حبه لازم هست استرجاعین هم ثابت میشه پس اون استرجاعین ایش که میگه بردر طرف معنا نداره یکی دو بار قبل از طرف باشه اختلاف این که این هده خیلیت یاره این پاسه در این هست آیا این برگردونی یا اگر گفتیم احتمال تقنی در به قاضی این رو برگردونی وکه انصافت از در اون تحقیات خیلی کرده اضافه هم لازم لازم اما اگر هده لازم بود استرجاعه این هم در یه هبه لازم بود فقط اون قاضی را میشه، روزه ارهان میجه هم ده تو در هبه لازم استرجامی پس این اشکالی که الان در این مسادر آمده صحیح ترش همینی استرام که که یعنی این لزوم هده را هم باز در نظر میگیریم که هده لازم باشه یا لازم نباشه بعد پردن در اقوام تقریم و سامیل اصال سهل هر نهوی ازه استرگیر چون ایشون مد فائده اساطح حجره میشه ما که به اصطلاح منافشات مطلب رو عرض بکنیم یک توضیحاتی راجع مطلب بگیم بعد تویی تماشه بعد بعد تحلیقاتی که مردم عالی روانه مردم روانشان حاشیه اینجا داره اون چیزهایی رو که مردم عالی یک بهدار کمتر کامل نه به این هم در این سوال قرار ندیم استاد تمام کلماتی رو که از استاد شده در چیزی در مثال که هایز بیادو نه بودن قرار کلمات مرموم بیرمانی از توی کلمات بیرمانی بیشتر از این مجرد در مثال هم برم اولد اینکه بوده بارو بحث بشین این نکاتی رو به کلی من اینجا متعرض بشن پرشن بشه قبل از بحث از سری در فرق اسلامی جد سننه حقیقی رسول الله اینه البعینت و علال مدعی ولی یمین و علا من اون که ره علی یا علال مدعی علی, علی. علمداره. یا همان عبارتی که الان بین علما مشهور الی یمنا یعنی علی الممکن تو ذهن من این علل من ممکن عبارات فقها شده واسه چیز بود در جریدهانا چون که من تو ذهن از متن وارد قدیم استفاده کردم بسیار سخن شسته و رفته ولی یمنا الان دو ایراد متن حدیث میه غلط همین متن مشهور الی یمنا ص علی المدعی ولی یمنا علی الممکن که اساس باب قضاوت خب این بحث جاشم اینجا میه اون نقطه ای که الان ما اینجا نوارد بخش میشیم که اون نکته اصلی است اینه که مئیار ها این یه نقطه اوله ای آدم دردها در باب خیل آمدن باب قضاورت اختلاف رو به دو قسمت اصاسی تخصیل کردن باب مدعی همون یا باب ذروار یا باب تداری استراها در باب مدعی همون که یا باب ذروار اون جایی که یک محور واحد باشه یکی مصدف باشه که نافی باشه محور یکی باشه این اصطلاحاً بیگن بابا دعوال و باب مزدری و ممکن اما اگر محور دو تا شد اون دقت میکنه یعنی هر کدوم یک چیز رو اثبات میکنه یک چیز رو محق میکنه مثلا یکی شوی جا که رو به شما داده این ای اجاره بود اون میگه که نفر آلجان رو دهید بود, بود. این با مثال یکی اسبابی یک چیز میگه نفی دیگری میکنه یکی یه اسبابی یک چیز دیگه میگه ما طرفی آوردید اینو اصطلاحا هم الان اصطلاح داریم شده که در اصول در بحث ازش تعبیر به باب تدادی پس یک باب تدادی داریم یعنی هر دو مضری هم یک باب مزدری و منکر دارید اگه این مطلب رو منم توضیح بدم توضیح روشن پرش در چه از طرح در این حال ما نداریم در سر آینده و در طرح دومی که داره مرحو میشه دا ول... ولی و ولیسه حواله موجب قضایی که ما با دفتره ان شاء اونجا یک توزی ارج می کنه ولیضا در باب خضاب رخیه اول این که قاضی باید تشریف بده این مسئله از باب مدنی و منچره یا این مسئله از باب تداییه از این ما سلیمان نحاتی این از باب مذل و منکر اینجوری 하게 حال کنید اون دافع میگه این رشوه بوده هدیه ن اون آقا میگه نه آقای هدیه بوده رشوه ن بوده میشه تضاد باشه اگه دقت کنید چه چیزی فرض شده هر دو میگن هدیه بوده فرض دون مشرحله هر دو میگن هده یکی شویه سریعی دوده یکی شویه سریعی نبوده پس باب مدرگی مونده پس باب دعوا و اون که پیغمبر اکره فرموده از بریانس و علمدرگی و یعنی و علامن دعی علی این مال باب دعواست نه باب تلایی ولی تو در باب تلایی اگر بلیه بودن به یکی نه نه وگان بارنگه به تعارض ببین که یکیشون قسم میخوره هر دو واسه قسم میخوره اما در باب دعوا یکی قسم میخوره یعنی که ارجاع درست نکول بخونه هر گونه در آخر درس ایجاد پیدا وارد یعنی مخالف اون پس در واقع یک نکته اساسی ما باید اول هر دعوا رو یعنی هر اختلاف رو تشخیص بدیم آیا این باب تداوی یا باب دعوا این نقطه از این مهم تر چیز دیگه ایست اون اساسیه؟ با اون که در روایات پیغمبر اکتر که این رابطه آمده این قائده آمده این سنت پیغراماده تعریف مددعی و منکر روشند این مددعی ما در روایاتی که خودمون داریم در بعضی از مواردش انسان احساس می کنه که این آمان مددعی باشه اون منکر باشه در روایاتی ما در احس اونی که ما از زیادی مزدری میگن یه باب مفصلی نیم میخوام وارد بشن این خودشی که از مشکلات باب خطا خب؟ در میخواد میخوام نکاته فنی رو بگن که این فقط در اینجا نجاهیگر به درد کار شما اون که میلیار در باب مزدری و اونی که چی جوری بشنسی؟ خیلی اوپنان برای مزدری وزیده شونه؟ منگر چی جوری بشنسی؟ چی قیله به این که وسیلهی نیم خواهد چون پیونبر کلام رو به ارخ اضغا کرد از را اون در حضار ارخی اضافه میکنه اونو ما مدهی بزنیم ولی سعی کردن کنن ضابط نشه یک محکوم ارخی بشه که به حسب ارتکازات ارخ تشتیز بده باشه در مقابل سعی کردن ضابط نم بشه ولی ازاد مشکول ای که برزه که شده أین شده مدنی کسی که قولش مخالفه باعث مرتكت کسی که قولش مواقق باعث این که این معروح معروفه. این تو روایت نیست آنها نه تو روایت آمن رسول الله هسته تو روایت ما تو روایت ما هم نیست که مدنی قولش مخالفه از این موقع مواقق هسته این در حقیقت آمندن این رو تفسیر ارسی گرفتن یه تفسیر اولوی دیگه هم شدین حتما که دیگه قولش مخالف با ظاهر این مدعی نه است که دیگه قولش محافظه با ظاهر این مونکر تفسیر دیگری هم گرفتن از مدعی منلو ترکت کرد به خواب چون مدعی مثبته، اگر مدعی دست بردارد یه قصه میخوابه دعوان میخوابه یعنی مثلا فرسونه کسی عبا داره کسی نونیه عبای که این آب می می دوشی دوشی مال منه. اونو اون چیزی نگفتون مشهود باشه چون سر یه خودی باهره این آقا مزدقیه یه دیدی که را سو کردن به قاعده ظاهر چون ظاهر آن خالیت داره موافق با قائده هم هست خالید دارم هم ظاهر همینطوره همونطور هر که اون طرف طور که دعوا این سه تا ضابطه این معروفی که می‌بینید اینا سر کردن این رو ضابطه من دو عرفی بکنم این یک نکته این که خیلی نکته‌ی لطیفی از اون مهمتر نقطه دیگه که اون نقطه از این دریفتر و از لطیفتر ما اگر آمدیم دنبال اصل بودیم اصل رو به چی قیاس بکنیم اصلا در همی جا این میگه هبه فاصله اون میگه هبه سریعه تنمازو تنمازیم خب شما میگید کسی که گفته این هده فاسده منکر مدلیه اینا آمدن منکر رو چی گرفتن؟ منکر رو اون که چی گرفتن اونه هده سریشون اصاف سهل رو بشن خب از اون مارد قابل در اون یکی هم اصاف زمان باشه الان یکی هم اصاف پس اون که بیگه هده پاسده مطابق است با قاعده زمان اون که بیگه هده سهیه مطابق است با مانده اصافات سهر یه برس اینه لفت بکنیم چیه ها من از بکنیم یه برس که ما اگر برفت هم اصول رو بخواییم نظاره بکنیم تقییه امنایت باشیم ما برفت هم بخواییم اصول رو جاری بکنیم اصلی رو که بخواییم جاری بکنیم به اینه محل این دسته کلام باشه یعنی مصمونه هست و مفاده هست و معده هست با کلام این شخص یا اون شخص یکی در بیارد مثلا این آقا میگه حدیریتون فاسده پس اگر حدیریت فاسد بود زمان به اصطلاح نداره زمان داره به نداره اما اون آقا میگه حدیریتون سریفت زمان نه داده چون حدیه خون ما بیاییم دیگیم درست اصل اولیه ما اساس عدیه زمان نا که چون پرغمبر فهمیم ترامانوش به حدیه به معهده پس ما یک اسالات و زمان داریم با اسالات و زمان اطلاف کنیم حدیه فاصله ده اشکالش کیه؟ اشکالش اینه که مجرای عرض و اسالات زمانه مجرای کرام هده فاصله است این دو تا با همینگه لازم ن این یک نقطه ایسی لر کتول و گفلی ما مثل فلسون مثلا حتی شرایع و لومه و شره لومه و از این کتب قدیم بگیریم تا جنید این گفته رقی ریجه اصل کلا رقی ریجه اصل کلا اون نقطه اساسی رو نمیزن باشن نقطه اصاسیش اینه که آمادن اصل رو با لوازم کلام حساب کردن نه با خود کلام پس ما به اینجوری بگیم یک مثب و دعوی داریم یک لازم مثب به دعوی داریم آیا در میار از از باید مثب با و دعوی رو اثبات بکنه یا از که اگر آمد لازم شد اثبات تر اثنان داریم. این قاعده عنایت نیگه هبتون خواسته در تپس بکنیم مثال کلام چی بود بگم هبه فاسده تم به قاعده علیه عدلیت این که هبه فاسده ترین هبه فاسده ببکنی که عدلیت ترین میکنه زمان رو اگر هبه فاسده بود لازم زمان لازمه بیشت اما اون بگم گه هبه تون صحیحه از سالت و سهه اثبات میکنه از سالت و هر عقبی معاوضه واقعی تو صحیحه در حبت مبتدخان علیه این میگه حبتون صحیح میگه حبتون فاسده خب اساس سهی اخوزار بزنه حبتون صحیح ببینیم این که بودیم دو تا اصل رو اساس زمان رو بود اثبات کرد حبتون فاسده اصالت سهه رو بود اثبات قولی این آقا رو که حبتون صحیحه به جیان این برس ما برس رو به یک نطاق در یک افق بازی مطرح بکنیم قبل از این تاروز تا مثلا این خب اصال زمان با اصال سهل تاروز تا بکنیم قبل از تاروز تا این نقطه روشن قبل از تاروز تا ما باید میار بریم اصلش اونه آیا وقتی ما مخیلی تمسخی به اصل بکنیم روشن باید در نظر بگیریم مجرای اصل و معده اصل عین دعوا و سلام باشه این رو ما سابقاً من توضیح دادیم تو ذهنی که ما اجمالاً هست در اصل که سرمی ها مستد اصول رو آوردن تقریباً جوری بود که لوازم و اصول و مصفتات شوشون حجه بود مثل امارا درده ها در, در اصول شیعه آمدن گفتن مصفتات و اصول حجه نیست دونه امارا موازمش هر نبیده ها بعد ادهی آمده در اصول شیعه مثل همون نایمی اگر واسطه خفی باشه از که مسرط خود جد ده مرادشونه از اصل که چیه مرادشون میگن شما لسان دری در حالت خودگیاتش لسان دریمی در نظر بگیریم اینجا در ما هم نفیم به دربا مفاد ازم و ادهای ازم در نظر بگیریم این دو تا باید با هم دو کارم داریم. اگر تلاشون دیدنشون بود میشه که مسیح ایش در اشکالی منتشر نیست در سهی اولای زورا هم نیست. شما هم فهم لعنتی که کن تلاع یارینه من وجوده ایش اشکالش هم چون برتر این هدیتاز و استثصال بکنه استثصال اگر ما باشیم یارینه تلاع وجوده پس استثصال و برا اوجوده. ما چون قبایت لسان در این وضوع نمی خواهیم لا ثلاثه الا به توهور توهور می خواهیم لذار شایدنه دیگه از این رسال هست که این حدیث اصلا مورد خود این حدیث اصل مصرف اصل مصرف چون حدیث مفاد اصل حدیث بقاق و وضوعه مفاد لسان دقیقه نقطه تمیه اصل مصرف چیه لسان دلیل در, در نظر ببینید معده اصل و مخاد اصل در نظر بگیرید، مخاد اصل این دوتا باید این هم باشن اگر بینشون تلازم شد میگن مصر این اصطلاح مصر نمی اگر تو امارات بود اشغال نداره، اما تو اصول میگن نمیشه و نظر تو مشکل اینجا پیش میاد روایت میگه لا صلاحات الله به توحور خدیث نگه لعنه که کنته الا یقینم من وضوعه نگفت من توهوره باز اون فرم من توهوره مرحوم نائری و دیگران که جا میگن نگه واسطه خفیه یعنی دین وضوع و توهور واسطه خفیه اگر گفت لعنت کن الا یقینم من وضوعه که من توهوره آیا ازده ای کن ممکنم واسطه خفیه و نداره از این واسطه نباز باشه معروف استدلال معروف بودن تعدیر مرحوم استدلال معروفی دارن میگه کلمه واسطه در روایت لفظی نه یناده که منسرک بشه به واسطه جلیب این این حکم عقلی به طبیه های های املا مابه نه خطی و فرم نبید. چرا؟ تو در اینو تعبوده؟ شما رو تعبوده به وضو داده، نه تعبوده به توهور؟ پس بنابراین، این خوب دقت بکنیم، ما در قاعده به کلامتون رو کردن اگر بلی تدیس شرحلوه رو اینقدر فرو رو در شرحلوه داره در معرفت مدهی و منکر که اینها نقطه اینه احسی رو به لحاظ در واحد آن کنید یا لازم در واحد آن کنید ما اگر اصابات زمان رو اتفاق کردیم خیلی حکسی ها کنید عملیت ما اصابات زمان پس این زامنه های که زامنه من رو شجب لوش نیست، بود هیچ پس این نقصی اساسی در این مساله ما تو لایت میشاللله آلو. من بودجه تا مدرسه کنید. خود توی مساله دفتر احمد صنعت که نکته زیادی نصبی کردیده. فوری که در این گذشته است از موارد هریک در کشورمانه در مساله احمد صنعت ترسو به شهروندی ما در مسی. ما فروعه کمی رو تو رو باید داریم به برمید سنت و اصول رو خود جد اون روی مقامی اونا مشکل نداره بگه با انتظار زمان اصلاح بگیریم هده فاصله اما الان در مسئله که اصحاب ما که امکه مصفتات و, مصفحات و قبول نمیکنند. کنن مسئله که همیشه یه شما بابا واسه اگه خطیباشه قبول می معیاری یعنی که ایشون گفته بحث لزومی تعریف در شفاه واسطه نظر ما این است که اگر در نظر او عین تعبد باشه و اون واسطه رو نگاه کردنش واسطه حقیقه بقای میشه بشه و تعبد به وجود چه محمد